بسم الله الرحمن الرحیم به نام بی اندازه متربان نهایت باره قسم به با این شهر و تو باشنده این شهر هستی و قسم به پدر و فرزندانی که به وسیله آدم به دنیا آمده است بگمان انسان را در رنج و مشقت آفریدیم آیا فکر می کند که هیچ کس بر او قدرت نمی افتخار کرده میگوید ثروت زیادی خرج کردم؟ آیا فکر می کند کسی او را ندیده است؟ آیا برای او دو چشم یافریدیم و زبانی و دو لب و به او دو راه را نشان ندادی؟ ولی او با تحمل رنج و زحمت راه سخت و دشوارگذاری را سفری نکرد؟ تو را چی آگاه ساخت که راه سخت و دشوار گذار چیست؟ سپری کردن این راه حبارت است از آزاد ساختن اسیر یا دادن طعام در روز گرسنگی برای یتیم خیشاوند یا برای مسکین زمینگیره و باز در عین حال از کسانی باشد که ایمان آورده اند و یک دیگر را به صبر توصیه کرده و نیز به مهربانی توصیه نموده اند. هم ایشانند یاران دست راست و آنانی که از آیات ما انکار ورزیده ایشان یاران دست چپند بر ایشان چنان آتش است که همه روزنه های آن بسته است